و الحمد لله رب العالمین اصول الله و علی سید و رسول الله و آله طیبین و طاهرین و و علی رب العالمین اجمعین الله و رحمتی و جمعیم و الحمد رحمتی روایات به امغانینای مدارش قبلن خونده بودیم حالا میگه این سفای بحثی بشه از که در باب 15 بودیم روایات ما به کموزه رو خوندیم این روایت بربول اصلا در انصافاً مشکل داره یعنی روایت بربول اصلا مالم یقصبه که جمالاً بد نیست در کتاب علیانو یعنی جعفر در کتاب بهار مالم یوزمر به ظاهن زمر در اینجا یعنی آلات موسیقی خصوص مزمار نباشه مرموم آقای ایران نشن این نفخ خفل مزمار دعید مراد باشه مراد ظاهر کلی آلات موسیقی باشه در نُقته مَقوم حساب هم بوده ماله یُمرده یُ من بهن الان نمیفهمم منظورش چیه این احتمال درشه که از اصطلاحات موسیقی بوده شدی بوده تعمیر یا هم مریض بوده خاصیاً برام فعلاً نمیبرن نمی اینکه مراد امر باشه دستور بده اون که تاثیر نمیجاره حالا یوامل نسخه حساب وسائل رو الان درست نسخه سه مالام نه شده تو این طور بگیم کلاسه این طور بگیم که قنایی که در خطر و اذهار فرع بوده مراد आवाज خوبه لكن بدون جهات محرمه یا در مثلا عروسی این لیستی از کلا لیستی از دلتیا یکی از موارد محرمه است یکی از انواع محرمه است مثلا رجال در اونجا وارد نشن آلات موسیقی نباشه نه اینکه که لیتر خصوصی این ولیزا مالم سبب رو آن بگیریم خیلی این حدیث مضمونش خلاصه چی میشه خلاصه مضمونین حدیث این بشه که به اصطلاح خوده چون غیره رو از حالا چون دیگه قبلا کسیم تکرات نمیتونه انصافن استعمالات و اروفیش مختلفه انصافش یعنی ممکنه به بعضی که آواز خوشیم اونجا اینکه آواز قشنگی داشته روشان غنا بیدن یو و شواهدش هم عرض کردیم شاید مراد اینه سه از تو یعنی اگر فقط آواز خوب باشه اشکال نداره همه وسائل محصیت مثل دخول رجال مثل مزمار یزمربه بقیه آلات موسیقی رویونها با اونها همراه نباشه با کارهایی که پس که ما که وقتی هم باشه چی با این جور چیزا هم نباشه باشه نداره پس این روایت رو میشه معنا کرد انصافا میشه توجیه کرد و مشکل نداره این حالت توجیه ماست مثلا که من صادرا هم اگر آن علاوه بحث قائم باشه شن ماقت مضمون شیخ صدوق در کتاب فقی در این کتابی که دست من هست این کتابی که دست من هست صفحه 238 میشه در شماره شماره حدیث 17 از باب 99 حدیث 17 از باب 99 از باب مایو داره در شماره 17 محمد بن بن حسین قام رویه اجر المغنی و المغنیت عجیبه کاش که این رو اینجا میابرد صاحب وسائل خیلی عجیب خیلی تحجیباوری که اونجا آورده مناسبش اینجا بود چون هر دوی اجر مغنی و اجر مغنیه صبح کرده. خاص کردن که این روایت انس صادق رو فعلا پیلن پیدا نکدیم الا در امالی احمد بن از بزرگان زیدیه است. ایشون نقل میکنه واسن خودش انس صادق از احساب قال ان اجر مغنی صبح و اجر مغنیه صبح دو دو طور. نتیجه جمع جانتری شبیه این متن صدورم ان رسول الله نرسیده صاد روی ایشان نهر عام میوردن. حاله و خیلی بهتر بود برای منها نفی نه اینکه من فهمم چرا ایشون چیزی اعتی مو از در بازاله نظرش به اون بوده یعنی ما الان بهترین حدیثی که دلالت میکنه بر منها این حدیث شماره 17 باب 99 اون اصلا سریعه در منها این راجع به کسب مهمه یک بحث این بود که آیا تلازم هست ما بین قرمت اجر ک... با قرمت عمل راسته تمام زبط آیه خوی نوشتن درست هست شیخ هم دارن. و درسته اتا اگر ثابت بشه که قناه حرامه عجرش هم برش حرامه اصولا عرض کردیم قائلی کلی گذاشتن هر عملی که محرم باشه اخذ خجره در موقع دوبه حرامه که عمل منفیه و محرمت درست این مطلب و از قمت اجر میفهمیم که اون عمل حرامه این هم درست سر خوب بهق این سال و هم توی باب ن رو این عنوان حدیث سروردده یه حالا که اجرش حرامه خود عمل حرامه تو اون باب برای اینجر رو درسته این سال ملظش درسته و باب بعدی سهمن مغنی است دو تا عنوان داریم یکی سه محبه که اجر مغنی عجر مغنی ام از این که هسته اون مغنیه کنیز باشه یا زن آزاد باشه زن خاننده است و غازم هست میره تو جرمی خونه طول میگیره گیره کنیز هم نیست اونم حرامه فرق نمی کنه اما سمن المغنیه که میگن مورد اونجایست که کنیز باشه آزاد که حضرت باشه این راجبی این مردم پس بنابراین وقت اون سمن مغنی هم خودش به عنوان خاصی داره این راجع به این مطلب یک مقصی رو دیروز به حدیث سالت و عبا عبدالله انکسب نامغنیه و نائهه فکره هرون که دیروز کنیم این رو یک توضیحی راجع به این آنان هرز بکنن حدیث, حدیث رو از حال ما قبول نکردن حتی مرمون شهر صدور مرمون کلینی و صدور اصلا نهی ورزن حدیث رو اگر قرارا اگه وقتیی که تشی گفتن میذارن چرا واسه ایده از احادیث که الان به صورت معارضه اگر شیخ نبود ما خبر نداشتیم این حدیث هست این میگم همین باشه مثالش همین بود وانگهی که اول هست اگر شیخ نقل نکرده بود ما قطعاً نمی‌دونید خبر داشتیم این حدیث که شعر تو الکس بالمغنيه و الناعه صفحه 90 و 91 این شاهد که در جریان تاریخ از بابی افتاده است این اگر شیخ نقل نکرد رو منم کلی هم اسقاطش کردم شیخ صدوق هم اسقاط کرده چی گنده روز مناسه در شیخ طوسی اگر ایشون نیاموده ما خبر نداشیم ما این چطور سأنتوان کسل مغنی و نائحه و کرمه او که اکثر ما رو صراحت میشه از کراهه که کسل مغنی به معنی تحریم که این شبهر ایجاد من یه توضیح داشته این عرض بکنم کنم. این سنت تحبیر روایت رو که چطور شده اولا من کرارا عرض کردم اصولاً فقه در دنیای اسلام اتفاق بکنم بر این اساس پیدا شده ارز کردم از معارف دینی ما جزب نوستین معارف دینی ما که از زمان صحابه شد فقه فقه دارد تاریخی مثلا برای اصول و برای فرسیم مثلا عوائد و اینها مقدم بود برای نهر و صرف بایین اگه نهر و صرف هم دیگه بگیم دو تا از معارف ما خیلی تاریخشون خیلی جلوه یکیش فقه در زندگی عمومی مرگومه یکیم تفسیر قرآن زیاد میکنند لذام اصحابه و تابعی در تفسیر قرآن زیاد نهر شده این دوزن انصافه می جلوه. و هر اصلی اصیح فقه چی بود مخصوصاً از مخ اون دو واقعی چون اولی هم گرفتار بودن هم خیلی فتوهاد نداشتم هدف اصلی خیر این بود ما موضوعاتی رو داریم که فهم اول حکمش رو موضوعاتی داریم که اینا حکمش نیامده این سوال اینه موضوعاتی که حکمش نیامده فهم بر این اساس دادش شد تعمال برداریم اون وقت اینجایی که موضوعاتی که حکمش نیامده این دست بندی می یکی مثلا می یه از که می قاعده درش جاری بکنیم دنبال قاعده آمه می رفتن که تشکیل فیما تشکیل و درمانه واخره دو و تشکیل این اصول داد. مثلا موضوع ایست که خدمش درمده اما حاضر سابقه داره اینجا که که های استثار جلیه مثلا خانومی که به لحاضه بعد از ایام هیزش خونش پاک شده اما هنوز قصر نکن خب فشتنه بود نصاف محیز ظاهرش که ایام هیزه حالا این موضوعی بود که حکم نداش، اینطور طور فرض این موضوعی بود که حک نمید چه کار باز بکنی؟ بعد از قطاع ادن و قبل الاختصال اما اینجا حالت سابقه داشت یعنی قبل از این حالت حرام بود کسانی که قائل به استصحاب بودن میگن استصحاب جایی می‌کنه. مثلا واقعا حرام بود راهو حرام. تا قصر بکنه تا قبل از قصر کنه، و بعد بعد موارد دیگه فرض اون آبی بود که داغ تا کور بود، توش مقدار خون که خیلی قرمز شد. یه روز مون بعد سفید شد، آب عادی شد. اینجا گفتن قبلا نجس بود، حالا نجسه. اینم با مثال هم استصحاب. حالا آب رنگش عوض شده، برگشته، عوض بنفسته. نه با الغاء حکم خود این آب رنگش برگشترن یعنی اجازتش رفته فیلن سریف شده بیمونید میگفتن نجس بود حالا هم نجسه رفت کنی استثاغ بود یعنی یک راه رفتن تره عنوان این که صادقا یک حالتی داشته الان هم همون حالت رو داشته باشه این بردها هم اصول شد آیا استثاغ رفتان حجت هسته نه رفتن. پس یک راه اواده کولی شد حالا این سواض کلیه شکل های مسه میزاریمیه شرش اصلا جی تر از این اینو. این رو های بعدها به اسم تو قرار قرارن و هر می گفتن ترس کنید. ما رو باید داریم که کسان ضروا و شرار داریم که بهخر و حان کهخرشان خیر فروش حان. خب سوال این که انگور بروشیم به کارتون شر ها انگور بشیم اوننا انگور بعد این نور این چیزی حالا چیزی توضیحی چیزایی که برشتیه یه چیزی کمتر از اون اسمشنه احانه برقه است گفتن احانه برقه است من اونجا بره میشه پر شما اگر همان این هنگور رو رو به کارکنه شراب درستی کنه این احانه برقه است این هم تمیونی این, این کردن شکل بقوله موزیان سیستماتیک یا شکل سیستماتی من مواردی رو پیدا که دروه هست بعد مواردی بود که جوزئی بود دقیق بکنه مثلا مواردی آمد و لای ایسی نمید این نکاح لای نکاح و بقیقه آمدن قواعد اینا سو کلاج نه علی نه نه یعنی این سیاه‌ونه. که نداره اون لباسش رو بگیره. اینه که واسه اینکه فاضل قرنه‌ای حالا چهار از عدد می‌خورد. اگر کسی که اینطور در خارجین که اون سره زن شادوشیت مثلا سرش پولدار نصف پیدا با هر هم نصف حساب کشیده می‌شد. نصف هم می با شادوش یا با. خوب. این سو... آیه مبارکه متصدی این قسمت شده که زن میتونه زن پیر زن با اون اوصاح با دو بحثش میشین چادرش نبوشین به طور طبیعی اگر چادر نبوشین نصف ساق بیرون بود این که آیه است سوال موضوعی که این بود زن میتونه نصف ساقش بیرون بیاره مرد میتونه بهش نگاه بکنه موضوع عوض شده یکی سرطر صاحبون نه یکیوز رو در آتش سوال یکیوز رو در اجورت نه بر زنی که قوارد دونن اون مقدار لباس ها یا چارد یا چاردو یا هر دو یا یکی از اون چاردو کنابیه شادت مشروع هده در بیان این کنار بگذنه یا مثلا زن اگر افبازه همزاره بردازه بچیش بیون باشه که باید آیا مرد از ندیر میتونه نگاه میکنش به صورت بود دقیقه این چی شد این یه نقیه نقیه کار شد یه نقیه کار اینجوری شد که یک موضوعی داری خب یه موضوعی که این نوع تلازم و قروفیه متعارفی داره نه تلازم و فقیه. اون ممکنه که بزن دستش بیرون باشه مرد داره کنش تلازم و فقیه. حالا نمی زندرسی شیدون که من نگاه میکنم قد این نهبه کاری بود که نهبه کاری بودیم نهبه کاری بود که باقاها از صدر هم شروع بود کندم از افر رو که انا ما مصطلح کتوبه که نهبه سندن حتی ما وقتی وارد مخواهیم بشیم مصطلح رو که اون معنا این استلام اینجوری بود فرس این داری که که کلای چی مثلا هربا معلیکون میته گفتنا ها هربا معلیکون در دوات عربان دید مثلا سوال موضوع سوال من در لفاظی ایجوزش میته است حالا میته هست یا از اجازه مانعیت ثلاثی انتفاع سائر انتفاع غیر از اون بوست مقاله نگارنده که 3500 کلمه استفاده بکنه. اینقدر این خبر می‌خوام یعنی خیلی دقیق، تصویری، این یک مطلب ان شاءالله مطلب دوغا... از برن دوم از قبل دوم تاریخ ما در اصلاحات اهل سنت و هم به و بعضی جهان در اصلاحات روایات این آمد بین علما این مطلب مطرح شد که یک اگر مطلب این رو آب به سنت ثابت کردیم قیل این مطلب باشه که با قرآن ثابته مظلم اگر شرب خمر با قرآن تحلیم کرده فستا خلیب و بروش خمر با سنت تحلیم کرده بین حرام سنت با حرام کتاب فهم است یک می حرام سنت است و گفتن مکروح مرادشون حرام بود. می لحظه حرام رو برای حرام کتاب بکار می بودن منصوب رو برای حرام این یک مطلب مطلب دوم، با می کراهت رو جایی به کار می بودن یکی به بود نه منصوب سبوکی حالا پر از به سنت هم بوده به حدیث رسول الله بوده به تشریع اولی بوده به سنت اولیه بوده اما مدد خودش رو بود مثلا حرام. اما اگر لوازمش بود یعنی این تطبیقات شما دارین میگید این تطبیقات بود می اومدن به جای حرام بودن مطروب لازم محرم رو به کار می بودن. و لذا این لغت محرم که به معنای یک شبهه اصطلاحی نیست. ممکن بود این لفظ مثلاً به حرمت باشه. این ای نوع اصطلاح اون زمان بود دیگه اصطلاح ببینید در واقع ناهه و مقنیه خصوصوان حدیثی دوستی هم برمسکنی شده میخونم از جالور نوهینا یا نهینا یا نوهینا ان سلطین خاجره احمقه این نوهی نرمه مقنی دقیق میکنه اینشالا اون سلطین خاجره مطلبا تفریر هم داره تفریرش در سلطین خاجره ای؟ این تفریرش دقیق کردیم یک خود رو اونجا سوک سوک سه اگر دو در مقابل او پول بگیری این تفریع در اون سنت رسول الله خوده وقت می اگر می بگم بگن این مقبوضه این قابل قبول میز چون جنبه تفریعی داشت تأمیر میکردن یکره امی حکر حضالی این امی حکر حضالی یا کره حب و در یه رازه این کر همین رو رو ممینه و ما کانه علی یا یفرحان حلاقی اونم در حقیقت اشاره به و ولذا این روایت رو باز در این محیق از زمان ما مبصادر در این محیق بناتیم این که میگه تو هم کسب ناهه سوال از خود نوه و هنه نیست یعنی سوال از اون روایت رسول الله نیست داره ثابت هست دره. سآل که میشه سر اصل در و نظام این دو سال با هم اومده اون صورتین اون صورتین فاجره پیم اون این که خیلی من بر فرمون جابه گفت نوحینا از صورتین فاجره آیا معنای نوحینا حرمت کس در هست کل اگر در مقابلش رو گیره امام چی فرمونه فرمون که چون پیارن بر فرموندن ما اون رو دوست نداریم نکره بذاریم این که مرموم سال و سال یکی شراعت این امکان داره ما لیکن با شوالیه خارجی یعنی مثلا ما با شوالیه خارجی در اردین پیراجی به نوره خوزن که نوره متعارق بوده بردن نوره تیلی نحالات و موسیبی و تره و لنبن ذکر الله مید نومه خانی بیشتر به خاطر اینکه که وقتی که در میان عرب جانهی نومه خود در اجلاب و آبا و اون چی بود یا چیزا دیگه که این آلوان نامره بود اون مشکل چه مشکل بود مشکل مشکل دیگری دیگر بود مشکل نوه دیگه آبا و امیلاد و جاهلین و افواد فاسقی که قبلا بزن خیلی عنوان بدی بود خیلی این عنوان این عنوان لحب و لحب و رقاسی و, و, و مطربی و ک این سلطین پاجره دوی دو جهت مختلف هست تکه گفتن خب در اصدام چون دیگه آمد که اسم جاهدین نبرید خاند جنبه نوعه خوندن مطرح بود و لذا خواهی نخواهی بیشتر جنبه کراهت مطرح شد یا حالا با شروطی که داری که شرط نکنه علاقه دیگه مطاربی که لی زمره ده تا این حدیث رو میشه قبول کرد نه این حدیث چطور میشه یه تیکش یکیش تی اونطوری نه این رو میشه قبول من پسند ندارم تو اینجا آیا روایات به اصطلاح ترس و مغنیه حرمت گناه هم درمیاد با بله، انصاف هم درمیاد من باب 16 ایشون رو هم ثریعا بخونم روشن صادرات کنید سریعا بخونم رد آره بشین بابش خونزده رو که ایک اون باب و تحلیم بین المغنیه اینجا بگه اون تس بود اینجا سمنه و شراع سماع ها و تعلیم ها و جواز غیع ها و شراع ها نمندن یع مراها ها بل یمنه و اما این یعنی ها مغنیه رو پیدا روی شروعه که زمان جان نازه ما در وقتیش هم صابقاً زمانی دوست مطلقان درستید حتی هم سال من زنگیم را عبور دنم، قاردهش همیشه درست، قارده مگر اینکه او جایی سازجه میگذارد. نسبت به جایی که به لحاظ زنگ اینها در هم مثلا بود، اما که چنان کنار بود، نسبت به چیزی نسبت به هم باشه که در این داره که آبی آغاز سازجه و نان میشه که اینهاش فرق خیلی زیاده. مخصوصاً بعضی این. مورغ نیاها فارسی مثلا از مثلا مناظر دوردست می یا مثلا موقعی بود که خیلی چندی داشت چه اگه جاری نمونن برقرار داشتم ولی چه بسیار زیبوئی داشت دینارش اداف و ظرافه یک جاری خوب که مردم مرزم صاحب فائل تفواشون فعلا اینه یگوز روی بر شرد اندای مرحله قرنا هر خوبی که نکره واقعی گرفته اون روایت از سندش روشن و اصلا این مطلب ما نمیشه قبول بکنی زواهرش اینه که مطلقا ممنوعه مگر اینکه که اون رو با عنوان جایی سادگه ساده و حادی بروشه بله مطلقا ممنوعه این راجبه این عنوان بارو هم بخونی تا بعد برسید براز در وقت اول میگرستان صحابان خودون برای اینکه که مرموم شیخ سیسی نهب کنید سنه ضعیبه من نمیدونم شبه مرموم صحابان صحابان اول بابرده بس یعنی احمد که احمد عشق علی زن البعرگی. اگر احمد عشق علی احمد عشق علی حسن دینگری اینو میبیشنسیم نمیشه. احتمالا احتمالا تا حسن سونی هم بوده میتوه و احتمالا کارش در در بوده به بسیار و حالا خوان بوده اول طول که حسن که باشه. یا این تدار ما تنورو که نسوانیه اشتری ها و عربی ها من نسوانیه فقاله به اشکار نسوانیه فقاله کرد این کلام بوده که در باقر اندواز در باقر زناشوی اصولاً چه اون حقه زرد زوجیتون حقه چمین باید رمضا بسنباد باشد که در انداره قیلن صمم نظره الی و قال شغل اخباه لکه حلال مانده الان من خودم می‌پرمدی این آقا اول جایی تو که دار فعشتر مهمی عوض تو همسنو همون تو اوریدو به هر لا سبار داره نمیخوام بگیرش برای چیز و قلقه اشتر هر رز داره هست بایدو رو انخواست هم بوده از وقت به اون صحبت کردن و اینا خیلی بروشی یا اوریدو به هر رز یا لا اوریدو به هر رز چون به هر یا حال مغنی زا... نیست مثلا این حساب قاعده باشده الان روایت زنیر کنده ما این عبدالله می شده شخص عادی بوده احتمال روی بوده در خاص بودم من اون برده برشده و اوزه این دواره سوری می شیم خود یه و الله در اتحاب شخص توسی آمد این جوالی صحبت حدیث شماره دو محمدان محلیت شیخ صدوق قال سه علاواج محلیت الحسین من که که انشراح جاریت اللحا صورت خبی خیلی داری جاریت اللحا صورت قانون یک نشده ترجیم بکنه هم در حال ما علایه که ویشتریت را قدر کنم که از جنب بیده بیده بیده بیده. این ظاهر فتوای طالب سریل و جواد من این حدیثو بعد از این حدیث در روایت یعنی در راک اصل. قبل این حدیث این زیادی فهم کلام امام بوده که باعث می‌کرد کلام یعنی و اما خود روایت خوب از آده هیچ تند واضحی نداره که سیگه اونها که در صدوم مداره احتمال ما وجود نداره بعدا جاریت انده ها به اصلاً دماره مستده لا لاب ما علی تو, تو. هیچ نقطه خاصی ما مگر این کیجو میدن خواهد جاریت انده علای اله اداره جدید با این قرارداد چنین به سوالش هست که به نظر من هست تا قابل قبول باشه حالا چه این بله قبول کرده 5 تا مورد بله این کتابت خصوصه علی المحمد الله لا یزل بله از این که مثلا بگیم شاید من قبول دارم ولی از خصوصه نباشه احتمالی بعدا حدیث معروف به رو نعمل میکنه کتاب اشمال الدین چون لحمه داری ونزار صفحان حدیث خوب بود و که روایت قشنگی اسمال اطحاب نعفو قال محمد بن عثمان الامری هنیوس دیده یک تارا فی مسائل نامه این روشن بیشون تردردی توقیه به خط مولانان سار بزنان اما ما سأل که اما سبت که من امر منکرون من اهل بيتنا و بلی امنا فعلا هو بین الله و بین از وجود اهل قراره و من همکرنی تریسه مندی و سبیلو سبیلوی بنو بله الان قال و اما حرام و اما انوالكم فلا نقبلها الان تشکرون و شرط حیات، و شرط حیات. و ام ما و تزیم که و که زباله و ام ما من زن، من زن نیستم، من, من زن میخوام تا کپنر بگذیم و ام در هر سالگرد تزییت آزادانه. اینجا، اما ما مثلاً در این وزن من هم مغنیت هم را آمودون. خب. وقتی ما مفهمون ایرادشین مغنیت ها دیگر من دیگر دیگر دیگر. و لذا به نظر ما این مطلب ارتساب و سال فهموندن که اگر پس دشیندیم زن خینا انجام درد وزن من مغنیت ها دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر این هم یکی. راجب به سمن مقرمی دو سه تا تحبیر ما داریم یکیش حرامان که از آن خوندیم این می در کتاب قربل اصناعات شمای شهار از محمد علم که نروشتار و کفیز ان ابراهیم ابن عبد بدا حالا با تو در اول کسان عبد جهاز بدار اینا رجال من موالی تلع و جوان مقرمیات قیمت همون یک پر وقت عشر به طور متعاره از سال 40 هزار درهم بودش همه و قد جهنه لکه سلس ها سلس این 4 همیزار تو رو بر شما فقال علیه اسلام لا حاجه تلیفی ها امنه سمنه کبره و مقرمیته سبتون جا براه این سابه هم دستبردین حدیث نمیره بسردشه دستبردستن حدیث بردن قرم دونه ما حدیث هران سبابه از سبابه بردید دست در داشتن از این حدیث مجرد اینکه انسان نیت داشته و این کار انجام نده بسیار مشکلی بسیار بسیار مشکل. مرغمون کلیه‌ای هم که این کرده نهایت از در ازدواج نداریم، داره تویانیه. اگر ما می‌خواهیم کلیه‌ای، ظاهراً با نهایتی یکیه، ظاهراً یکیه. بله. از کی این نمی‌شود بیمتر؟ نمی‌شود؟ واحدها همه، واحدها همه، تراست ما ات عالدی راه است. چگونه داریم همیشه؟ فحال الله حاجتی دیفی ان حاضر سقطون و تعلیم اهل کفرون و استماع منه نفاق و همان اهل سقطون طبیعی شدیدا رفتار معروف دینار صاحب این که که نافی است جایزه و این تشریف کلی نایده علای حواله در اینجا یک تعبیرم که من اکلم کسبه ها اون تعبیر ملعون داشت یه رو باید دیگه از که اینم ما هم کنیم سابقا هم در وحثه سابق ادت نصال کنیم سهلیم این از طریق سهلیم زیاد به وشا میرسه قال صور اول حسن رضا اشراع مهمیه قال قطع کنگر و جلال جاریه تلکی من به نظرم مهمیه باشه این تازیه هم عرض کردم تلکی نباشه و ما سمن ها و سمن رو کرد و سمن رو کرد سهتون و سهتون به ن این طوری رو اگر آواز مخواه نگاه بکنن لگه این شماره صفحه 83 باب 14 شماره 2 اونجا هم داره خنل حسن نحری قاسانی نوشته اونجا قلطه خنل اون حسن نحری وشه خنل حسن نحری وشه خنل رضا قاضی سمن رو کرد به صبح این رواید در اونجا همید به اصطلاح آمده و شیخم آوردن بعد یکی دیگه هم دیگه بیدو دیم یکی دیگه میگه حالا نه نه دیگه اصلاً تو هاشی ناصر خدا نده از همین حضرت رزاشت اما یک اختلافی با این داره البته حالا اون اختلاف ما از خود همین سند هم داریم که رجب سمنشه شمایی 11 باب 99 از حساب انسرل و شماقال حسن ضای اوس و العب جللا یست الهن شنا سرار ها و اوات و نست و نیشته در حدیث. این هم همین سنده احتمال دا تیل شده باشه. احتمال داره که این حدیث به اصطلاح یک مقدارشیشون تحقیل کرده یک جایی یک داره نظر نواشتمظیر. حدیث شماره ح باز مربون کلینی اولش درست دن ابن فضال ایشون از ابن فضال پدر نربون میکنه اینجا نوشته از سعید ابن محمد تاتوری نسخه من ما بگذرم بعض نسخه تاهری چاپ شده نیست تاهری نیست سعید ابن محمد تاهری ظاهرم تاهر فلس باشه همون تاتوری درست باشه ما شخصی به نام سعید ابن محمد تاتوری داریم خودشم عبالقاسم عبالقاسم صدب نمحمد تاتوری اینو ما داریم لیکن توصیل راهایی میشه توید این ویژا رو بالایی بحث نمیشم ایشون اموی علیه نحسن تاتوری توصیف کرده علیه نحسن معروبه علیه نحسن تاتوری اموش میشه صدب نمحمد تاتوری هنه عبی آه خوبی این درست تا به در کتاب به استرواح موجم آیتوی سعدر محمد و سعدر محمد تاتوری توصیح کردن به کتاب تفسیر علی مبرانی سعدر محمدی که در تفسیرش نرمونه اون سعدر الله از شمیست اون نصف قدر چاپ شد یه واقع بحثش بخواب بسن طول میکشه فقال سعدر موردون و انبیع الجواری المغنیات قال شراع نه و بیع احنه حرام یکی حرام داشتیم یکی هم صورت و تحلیم هون کفر و استماع هون نفا این احتمال داره با زید دو اون دوایت قبلی جا شده باشه خیلی شبیه هم خیلی با زید خب یک مقدار از کنیم این ها از کتاب وسائل خود این مخاطر این که به اصطلاف در بود و یک مقدار از بعضی از چیزهای دیگرش رو از کتاب و حادیث که ایشون نیاده یک، من در کتاب جامال احادیث بله، در کتاب جامعه احادیث در باب 20 از همین به سلاکت داریم ما، در باب 20ش ایشون هم کسب و هم اشراع با هم به رو با هم در مثل به اشرار مال مقدماتی است که اما کسر عمل. یک ده این جایی که الان حیدا کردم 22 صفحه 240 باب 20 ابواب مایکتسر. خب این غالبا همون روایات که الان خوندیم ایشون اولاً می‌خوام جایی که تازگی داره و در کتاب مغله مرحوم شیخ صدوق داره واقعا ان کسر و مقدمیته حرام. که مرزا هم همین داره کتاب به دیداره بیشه کساده هم همی داریم شون نکن دردیم ببینیم ما از کردیم روایاتی که در باقی کس مخلنیه که مثلا عجم مخلنیه صبح در داشتیم خود قرمت بنا ترازه دیادی که انشالله می خودیم استثناءی بود را جبه اعراض اعراضه یادتون باشه یه روز کندیم که عرض کردیم هم با مرده کلینی سه تا روایت برده که عرضش هم از روح سنسایی ما،, ما هم متحیدیم نساخن از عبی بکیر مطورش مختلفه این بحث بزرش زادرش استثناء عراطسه از این کتاب به صلاح بور بلد دو بایی دو فرن ایده از ها و ایده فرن زادرش استثناء از که این شوارد ما بعضیش حاکیت این است که احتمالاً واقفیه این استثنال قبول داشته بلکه بعضیش حاکیت که واقفیه شد کنه را بود داشته نه در استثنال روش شد میمونه در برسه که کلیگیه کلیگی هنسه رو عبرده این برای ما روشن میزن از این انکار کرده روشن میزن مراد کو به این سه یکی یکیشو آورده اون متنی که استثناء هرآورده چنین میگه شرطی که احتمال لزومی کلی برقرار داره احتمال داریم که مراد صدور این باشه در مجلس هروسیب به شرطی که محرمی باشیم باشه صدور خود رجائش قرار نداره اجازه صدور نمیجوشه میرسیم بعد از این دو بزرگوار به شیخ مفید شیخ مفید اصلا استثناء نکرده شیخ توصی هم که استثصال نکرده هیچ چی شیخ طوسی اصلا خودش گفتی این حدیثی که میگه لاغث این یعنی برای آواز بخونن چیزی هم باشه مثلا حرام نباشه شعر بخونن تو این عروسی و اما اگه بخونن آواز بخونن دو کارو مطربی و لهوله و, له و, له و, له و نا باشه جنای متعارف مجالس باشه اصلا این فرضیه بین مجلس عروسی و رو باته اون شبهه‌ای که هست اینه که ما یک عدد روایات داریم یک عهد متوسط داریم اصطلاح ما مثل کتب سمسایی توی عهد متوسط احتمالا را به پیان غالب استثناب دار حدیث سنیان غالب اون سنیان بیده از در ازش هم گیرد اونا در که از جاید از که برشی و سه از کل اینی امهام داره از مرمون سبوها خالی از امهام دید. از بعض از شیخ مفید به از بعدانی اتجاه کلیشو میشه که جایی نیست مطلعت استثان نمید کنن در نهایی دارن که فرموت است در نهایی در این میگرده از خلاف محصول است خلاف که از بره انسان ندیره خلاف چون مواردی کرده نگاه کنم چا میدیم احوالو بزن به هر حال این استثنا در بین اصحاب ما جا نمی کنیم این مسلطنه همه اصحاب استثنانه می این سوال خیلی عجیبه با این که رواز عبید وسیر ظاهر استثنان است دیگه ظاهر رواز عبید وسیر من به ذهنم این طور میاد کسانی که این حدیث استثنانه و اصحاب نکردن همین که قرده این رو ما سابقا خیلی توضیح داریم شواهد ما مجموعاً دردارت میکنه چون فقور رضا در دوران قیبت صغرانه بشه شده و برای ایجاد اینو اجماع بین خوب و مهدان را که این کتاب فقور رضا بسا حجیه نداره اما اون فقیهی که کتاب نوشته خیلی در ما فقیه در ما بود تو اونجایی که ما سوازستیم بگردیم بیشه هایی کسانه که استوزدار نگفتن که رنس هم روایت داشتیم در به شفر رضا ایشون داره به علم ان کسی در مخلیت محضور رو بگیش شوش قبول میکنه اسپستان قبولی میکنه به قرآن قبل از کلیمیشون که بروزا قبل از کلیم, قبل از کلیم. در حدود اواظه در, در ساقه نیستون از بسی سر این سی این در کتاب په چون این فتوها رو و من از در کتاب په خوردزا همه اشجا که تمسط پدر قوم هم هم میکنه. در به قوم یا هم مرد می این فتوهای در مقنه به هدایه صدوها آنچه فقی داره که شروع از اون برم نرم تو فقی اما تو محنه و استصال استثنال وقت ندارم تا جایی که ما الان باقید شوارد ما میده چون من ارز کردم بعضی از فتاوای فقورزا اصلا زمین سات اجماعات به که سید مرتزا ادعا میکنه یکی از مواردی که سید مرتضی و دیگران ادعای اجماع می کنن تو فقورزا موجود اردان لذای این کتاب من از چرا کردم در فرخ و تدرید در خیلی نخش داشته لاغلت در در دوم در خیلی محصر بوده این کتاب رو برزار ظاهر شواهد اینه که مثلا کلینیه که بعد از ایشانه رو باید رو برده صدور تو فهمی رو ظاهر رو برده, برده. لیکن کسی که تا اونجای که ما بودیم رو باید رو کلن حرک کرده که این دقت ایشانه هست. در هست کده در کتاب ما فکر بدایم که قبل در خون ما این مطلب رو نداریم این هم راجع به مطالبی که مونده بود که به اصلاح در این جمعه خوضیش اردارم از ربایی که ایشون داره از قصف آقندی که در اینجا نمیده لایشه در بریم اون محضیات او در آشه آقون رسانه همه نه که محضر شدن چیز نمیده و نما رسولم بین مهانیات به شراحین این در اوالی گفته چون خود عرضش دروسی در دارم عرض که بخیه روایات همون نگوی که خوندید در این باب که هر دو باب رو عمرده ایشان مسئله چیز رو به اصطلاح ذکر نکردن مسئله به اصطلاح در فرقه را استثمان نگدن یه نکته هم شما باید راجب به خود وسائل هم صحبت میکنیم یه نکته هم چون در این کتاب در این به اصطلاف به مذار بودن در این کتاب جامعان احادیث به خلاف وسائل یکی از روغ بین جامعان احادیث و وسائل اینه در کتاب جامعان احادیث یه بابی قرار داده برمان صوت باب در به صدیلی بیست از کردیم از خود در تفسیر صوت رو باید داریم راجب به مهمیه چه عجب و چه تمالش در هیچ رو باید نداره در روایات اهل سنت که راجب آمده از جور یا سمن رو مقنیه نه اینجا یک بابی این داره ماغر انواع این رو نداره ما اونجا این باب رو دو مصده به شهر دیم. چند تا روایت کردیوی این جایت احمایات تو این روایت هم نهاره. یکیش ایش روایت سماه هست طور روایت سماه هم نهده مطور مختلف داره یکیش ایش روایت سکونیه طور روایت سکونی هم نهامده یک مجموعه روایت که در تبیلی هم آمده که مثلا فلا سخت خالصال اجرزدانی از سخت اونجا هم نهد بلد از اون اینطور دارد در همون تحقیق و روی اجر مقدمی و مقدمیت سخت این کسی برگیه می دارم تفاییم برگیه ای روایه. یه روایت در اکیزا و خیلی هم طولانیه حتی اجر معزن و اجر نماز جماعت و کسی اجر القار یا لازی را اقراب القرآن لا با حتی هستا یه آن ها هم آن موازن این روایت شما دوازده خیلی روایت طولانی این که طولانی ما بید در هم ندارد در گه چون جهریه خوب دقت بکن در اندی از روایاتی که زیریها ها عبارت بر عبارت خودشونه مثلا در این کتاب احکام یعقوب بن حسین او خطابهی که ازن کعید اضافه تصاوولات عباسیان را سلام کرد و غل یعنی رو به اصطلاح زیری کرد همین صحه صدر یعنی رو ترفتش ایجاد بسازید ایشون در حالی از زیری آمد اصحاب ایشان حاضرین که دستش مال به ده من در آدهی هایش ایشون میرده که در احکام آقایه تطیبیر چی شدن چی شدن خمول پاره صحبت محمدی رو نبید به این جامعه یا این در افتاده یه ها رواش ای پیدا کرده این هم یک چیز عجیبه بعد روش یکی از عجایب کار این حالا قید از اونجا در مرحوم آقایه به اصطلاح در این باق اصلا ما لفظه صحب نداریم و عجیب اینه و عجیب اینه که آی آه جامعه نوشته نمیشته بر و یکی فیر روایت دائم و کسی را به تحادیث باقی پونزده عجیب به این روایت غینا اشاره نکرده این هم خیلی عجیب در آهان که هستن در آشیشون اضافه رو این تا در مجموعه روایاتی که ما در باقه داریم یکی از عجایب اینه نه در روایت سنت نه در روایت شیعه در که صحب مجموعه نقوم برد و همان المغنیه نهان و عجیبیه که آیه برجردی هم در اینجا اشاره در اشاره هم نکرده که یقییتی این محله این هم کاره ما الان یکی دو روایت داشتیم امام تصریح یکی داشتیم که حرام بان خیلی اون حرام به جای خودش اما تصریح داشتیم به اصطلاح با عنوان کسی مغنی حرام ها. اون آخرش داره که این نقابات سختون تعلیم ها نسختون سمن ها اگر آرام خواستن اشتاره بر نسخه جامال احادی در که در فلان بابم خواهد آورد که سمانم مقنیت صحبتون در همینم هم داره که سمانم کلبه و مقنیت صحبتون تقلیم هم؟ این از عجایبه که در تفسیر خود صحبت نهداده اما در روایت ما نحنفی آمده این خلاصه بحث راجبین انصافاً روایات باید در مقام قدیشون سهی و سنده قرورشی مشکل نداره. هم عجی و هم سمد و هر دو اثبات حیبیتش بسیار شده.